ده هم. شب دهم امشب شب میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین است و به همین علت جمعیت بیشتری در جلسه حضور داشتند و بعد از صرف شربت و شیرینی یکی از علمای اهل سنت جناب نواب عبدالقیوم خان سؤالی را از جناب واعظ مطرح کرد به این مضمون که امروز صبح یکی از فرزندان من که مشغول تحصیل علم است از استاد خود نقل کرد که خلیفه عمر تسلط کاملی بر قرآن و آیات شریفه و معانی و مسائل فقهی اسلامی داشته به حدی که حتی علی ابن ابی طالب نیز به او رجوع می کرده. می ببینم که آیا حرف این استاد مستند است یا خیر؟ آیا آنچه که علمای ما میگویند در واقع خلیفه عمر نادره زمان در علم و عمل بوده یا نه؟ من نمیدانم که این شخص این حرفها را از کجا آورده نه هیچ یکی از علمای خودتان و نه حتی خود عمر چنین ادعایی را ندارد آنچه در کتابهای شیعه و سنی وجود دارد خلاف این مطلب را میرساند تاریخ گواه است که خلیفه عمر به طور کل آری از مدارج علمی و فقهی بوده و در احتیاج دست به دامان امام علی علیه السلام و فقهای مدینه می شده این چه حرفیست است که میزنید آقا در کجا چون این چیزی نوشته شده خواهش می‌کنم عصبانی نشوید آرام باشید در این چند شب هر وقت به من اهانت کردید و ما را کافر و رافضی و اهل بدعت گفتید هیچ نگفتم و عصبانی نشدم پس دیگر جا ندارد که شما ناراحت شوید و پرخاش کنید به چه دلیل گویید خلیفه امر مسائل علمی را نمیدانسته؟ دلایل ما از لا کتاب‌های خودتان است. حمیدی در جمع بین الصحیحین نخر کرده روزی خلیفه عمر در مقابل اصحاب خطبه‌ای خواند و گفت که اگر کسی مهر زنش را بیشتر از چهارصد درهم قرار دهد بر او حد جاری می‌کنم و زیادتی مهر را از او می‌گیرم و به بیت المال می‌سپارم. زنی از آن میان صدا زد ای عمر کلام تو مقبول تر است یا کلام خدا عمر گفت کلام خدا زن گفت خداوند می‌فرماید اگر خواستید زنی را رها کنید و زن دیگری بگیرید و مال بسیاری مهر او کرده اید نباید چیزی از مهر او باز پس گیرید عمر از شنیدن این آیه و حاضر جوابی آن زن مبهود شد و گفت تمام شما فقیه تر و داناتر از عمر هستید، حتی زنان مخدره در هجله ها. همچنین احمد ابن هنبل نقل گرده زن حاملی را نزد عمر آوردند، او اعتراف به زنا کرد، پس عمر فرمان سنگسار او را داد. علی علیه السلام به خلیفه فرمود، حکم تو بر او میتواند مناسب باشد، نه بر طفل او، چرا که بچه بیگناه است و قتل او جائز نیست، عمر گفت آری همانا زنان عالم عاجزند از اینکه مثل علی را بزایند اگر علی نبود عمر هلاک شده بود از عمر نقل شده که مکررن میگفت خدایا مرا در مشکلی قرار نده که در آنجا علی نباشد علمای شما در بعضی از کتب خود نزدیک به صد مورد از خطاها و اشتباهات خلیفه را نقد کردند که وقت مجلس کمتر از آن است که ذکر کنم مقام قدسی علی بالاتر از آن است که با اهدی از صحابه مقایسه شود. جمله لولا علی یونده عمر تکیه کلام عمر بوده که در بیش از هفتاد مورد این کلام سخت و زخت شده. نکته ای که من در مطالعاتم به آن رسیدم این است که خلیف عمر، از دهاز علمی در درجات پایین قرار داشته به که گاهی اوقات خطاهای های علمی فاحشی در تشخیص احکام دینی از او سر بیزده. خیلی بی لطفی میکنید خیلی مگر ممکن است خلیفه در احکام دینی دو اشتباه شده باشد تقصیر من نیست علمای خودتان چنین واقعیاتی را در کتاب خود نوشتند و من فقط این واقعیتها را نقل می کنم ممکن است شاهد مثالی برای این ادعایتان بیاورید آقا؟ بیش از صد نمونه در کتابهایتان وجود دارد که به دلیل کسرت فقط به ذکر یک نمونه جالب بسنده می کنم در زمان عمر مردی نزد او آمد و گفت من جنوب شدم و آبی نیافتم که قص کنم چه کنم؟ عمر گفت اگر آبی پیدا نکردی نماز نخوان امار که حاضر در جلسه بود رو به عمر کرد و گفت ای عمر آیا یادت نیست که در یکی از سفرهای پیامبر من و تو احتیاج به آب پیدا کردیم چون آبی در دسترس نبود تو نماز نخواندی و من گمان کردم که تیمم بدل از قسل آن است که تمام بدن را به زمین بمالند پس چنین کردم و نماز خواندم زمانی که به خدمت رسول خدا رسیدیم میشن ور که در تیمم همین مقدار کافی است که دو دست را بر زمین زده و بر پیشانی و پشت دستها بکشید ای عمر چرا اکنون چنین میگویی عمر پاسخ داد ای عمار از خدا بترس آقایان خود قضاوت کنند آیا این عمر عالم است یا کسی که باب مدینه علم است و ندای سلونی قبل ان تفقدونی او فقه ها را مبهود کرده؟ آیا منصفانه و اقلانی بود که باب مدینه علم را کنار گذاشته و کسی که در جزئیات علمی سردرگم می شده را به رهبری اومد برگزینند من بیانات شما را در خصوص فضایل علی کرم الله وجهه قبول دارم. لکن میخواهم این را بگویم که چه عیب دارد که ما با هم از در صلح و صفا در و اختلافات را کنار بگذاریم آیا غیر از این است که علی کرم الله وجهو با کمال میل و رقبت دست بیعت به خلفای راشدین داد و به آنها کمک کرد چرا ما کاسه داغ‌تر از آش شویم خود او برتری و حق تقدم خلفا را با دل و جان پذیرفت چرا ما نپذیریم چرا به همان صورت که مذاهب چهارگانه اهل سنت در کنار هم هستند شیعیان ها نمی آین در کنار ما باشند چرا شما از ما دوری می ما هم قبول داریم که علی اعلم و افقه بوده ولی این را بپذیرید که ابو بک مسنتر و سیاست از او بوده علی جوانی نورست بوده که توانای خلافت را نداشته حتی بعد از بیست و پنج سال که به خلافت رسید به واسطه عدم سیاست باعث خونریزی و انقلاباتی شد و در آخر کار خود او هم به واسطه تیغ ابن ملجم لعین از پا درآمد. میگویند گویند از زوار در بین راه به دسته سارق برخوردند سارقین آنها را اسیر و انبالشان را بین خود تقسیم کردند در بین این اموال قطع پارچه کفنی مرغوبی بود که سهم پیرمردی از دزدان شد. دزد دوزد روبه اوسرا کرده و گفت این کفن مال کیست؟ زائری پاسخ داد از من است. دوزد گفت آن را به من ببخش تا حلال باشد که آن را کفن خود کنم. زائر گفت تمام اموالم مال شما باشد ولی این کفن را نمیدهم. دهند. دوزد هرچه اصرار کرد زائر راضی نشد. پیر مرد سارق شلاق را کشید و به جان زائر بیچاره افتاد و میگفت آنقدر میزنم تا آن را ببخشی و راضی شوی آن بیچاره قدری که تازیانه خورد فریاد که آقا حلال باشد از شیر مادر حلال پر. آقای محترم به چه دلیل میگویید امیرالمؤمنین با میل و رقبت راضی به خلافت خلفا شد آیا آتش به در خانه بردن او را سر برهنه به سمت مسجد کشاندن شمشیر برهنه بر سر او گرفتن و تهدید به قتل کردن مناسبتی با رضایت قلبی دارد و اما فرمودید چرا ما به جان هم افتادیم و کشمکش های بیهوده را دنبال میکنیم ما به جان کسی نیفتادیم. بلکه این آقایان اهل سنت بودند که هر زمان دستشان رسیده به جان شیعیان افتاده و جان و مال آنان را مباه دانسته و آنها را به قتل می رسنده نکته دیگری که فرمودید این است که بیاییم و همه با هم یکی شویم. ما نیز مخالف اتحاد و یکی بودن نیستیم اما نه اتحادی. بلکه اتحاد حول مهور حق و ادالت که علی و اولاد اوست. آقای دینی باید از روی تحقیق باشد نه تقلید طبق کدام ملاک عقلی و شرعی ما را مجبور می‌کنید که از برخی صحابه که بر برخلاف دستور خدا و رسول عمل کردند پیروی کنیم اگر بر سر یک موضوعی میلیاردها انسان با خداوند که واحد و تک است اختلاف پیدا کنند حق را به کدام طرف می‌دهید آیا می‌توانید به صرف اینکه اکثریت با انسان هاست حرف خدا را کنار بگذارید آیا نمیدانید که نظر و رأی خدا در خصوص جانشینی پیامبر خلاف آن چیزی است که شما بدان قائلید آیا شما تصور میکنید که من از روی تقلید از پدرانم مذهب تشیع را کورکورانه انتخاب کردم خدا را گواه می گیرم که چنین نبوده بلکه بارها و بارها مطالعه کردم دقت کردم کتابها را زیر و رو کردم تا بالاخره به حقیقت رسیدم هر فردی که راه تحقیق را در پیش بگیرد و از خدا کمک بخواهد به همین راه میرسد. برای اثبات این ادعا به حدیثی که امام احمد هم حنبل از رسول خدا نقل کرده دقت کنید آن حضرت فرمود ای جماعت انصار آیا شما را به چیزی که با تمسک به آن هرگز گمراه نمی‌شوید راهنمایی نکنم گفتند چرا ای رسول خدا فرمودند همانا آن چیز علی است، پس او را دوست بدارید و تکریمش کنید و از او پیروی کنید. همانا او با قرآن است و قرآن با اوست و او شما را به طریق هدایت و نه طریق ضلالت رهبری میکند. کند. آنچه گفتم خبری بود که جبریل برای من آورده است. از این قبیل اخبار که در تایید مکتب ماست، در کتابهای شما پر است، ولی حتی، یک حدیث معتبر از رسول خدا نقل نشده که در آن دستور به تبعیت از ابوبکر و عمر و عثمان داده شده باشد با این حال بر اساس چه دلیلی ما پیروی از علی علیه السلام و اولاد او را کنار بگذاریم و پیرو دیگران شویم و اما اینکه فرمودید شیعه هم مانند مذاهب اربعه در کنار ایشان باشد این حرفی است که شما میزنید اما اصلا به آن عمل نمیکنید. از یک طرف شیعین را کافر و مشتک می و حتی در بعضی موارد آنها را واجب و القصل می و از سوی دیگر می چرا نمیآیید در کنار هم باشید وقتی بر سر یک حکم فقهی مثل سجده بر طربت این همه سر و صدا را میاندازید و شیعه را بودپرست می می‌نامید دیگر چه جایی برای رفاقت و دوستی باقی میماند خوب خب شما هم مثل بقیه مسلمانان عمل کنید تا این حرف ها پیش نیاید مگر امی اربعه شما که حتی یکدیگر را در برخی مبارد تکفیر کردن مثل هم عمل کردند که به ما میگویید ما هم مثل دیگران عمل کنیم فتواهای فقه ها طبعاً با هم اختلاف دارد و این اختلاف ها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند چون هر کسی که از یکی از این امامان پیروی کند قطعاً سباب خواهد شما را به خدا قسم منصفانه قضاوت کنید به چه دلیل طبعیت از احمد ابن هنبل و شافعی اجر و ثباب دارد ولی پیروی از امام صادق و امام باغر نه تنها ثباب ندارد بلکه کفر و شرک هم هست؟ چرا این بونه غذابت میکنید؟ اعتقادات شما از عجایب روزگار است، چون طبعیت از اهل بید که عدل قرآن هستند را شرک میدانید. ولی پیروی از افرادی که گاهن فتواهای مخالف نص سریح قرآن داشتهاند را دارای سباب و عجر می دانید. فتوای کدام یک از اعمه اربعه بر خلاف قرآن است؟ بر طبق نص صریح قرآن مجید فقسلو و وجوهکم و عیدیهکم الال مرافق ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الال کهبین. دستور الهی در وضوع پاست و نشست آن. بوسل غیر از مسح است و این یک امر واضح است که حتی امام فخر رازی که از بزرگان علمای اهل سنت است هم نتوانست منکر آن شود همه فقهای اهل تسنن برخلاف نص صریح قرآن فتوای به شستن پا دادند البته از این عجیبتر هم در میان فتواهای ائمه اهل سنت وجود دارد برخی از آنها مسح بر چکمه و جوراب را جایز میدانند طبق این نظر مسح کردن بر پا باطل کننده وضوعست ولی مسح کردن بر چکمه صحیح است شما شیعیان هم فتواهای بسیار زشت و موهنی دارید کدام یک از فتواهای ما زشت است شما قطعاتی از خاک کربلا را به شکل بت درآورده و آن را همیشه همراه خودتان دارید و سجزه کردن برای آن را واجب میدانید برای شما که یک فرد عالم و اهل تحقیق هستید شایسته نیست که خاک پاک را بت بنامید این را بدانید که روزی فرا خواهد رسید که جواب تمام این تهمتها را در پیشگاه عدل الهی از شما خواهیم گرفت. هیچ یک از فقهای ما سجده بر خاک را واجب نمی دانند. پس چرا قطعات خاک کربلا را با خود بر می دارید و بر آن سجده می کنید. چون طبق دستور قرآن مجید باید بر زمین پاک سجده کنیم. پس در مباقعی که به زمین پاک دسترسی نداریم، از مهر استفاده میکنیم اما اگر در جایی باشیم که زمین پاک در دسترس باشد دیگر هیچ نیازی به مهر نداریم ما میبینیم که شیعان قطعات خاک کربلا را به صورت مهر میسازند و واجب میدانند که بر آن سجده کنند سجده بر خاک کربلا واجب نیست بلکه مستحب معکد است و بسیار بسیار فضیلت دارد چه خصوصیات ویژه‌ای در خاک کربرات که سجد بر آن فضیلت زیادی دارد؟ این خاک مورد توجه عمی تاهرین و حتی مورد توجه رسول خدا بوده. بیهقی و حاکم از ابن عباس نقل کردند. رسول اکرم را دیدم در حالی که حضرت حسین علیه السلام را بردامن گرفته بود. آن حضرت خاک سوهرنگی را در دست گرفته بود و می‌گریست. از ایشون پرسیدم این خاک چیست فرمود جبرئیل برای من خبر آورد که حسینم را در زمین عراق میکشند، پس این خاک را از آن زمین برایم آورد و اما مسئله دیگری که گفتید این بود که چون ابو ابوبکر مسنتر و سیاستمدارتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود پس وی حق گرفتن خلافت را داشته این گفته شما تلویحا اهانت بزرگی به خدا و پیامبر است شما میگویید که مردم بهتر از خدا و پیامبر میتوانند خلیفه تعین کنند در سال نهم هجری برای ابلاغ آیات سوری برائت که یک مأموریت مهم بود پیامبر در ابتدا ابوبکر را تعیین فرمود سپس بر طبق دستور خداوند متعال وی را اذل کرده و علی را برای این مهم برگزید پیامبری که همه افعال و گفته هایش از جانب خدا چرا از اول علی را معمور نکرد بلکه ابو را معمور کرد که در نتیجه پیام برسد و ابو بکر پیرمرد از وسط راه برگردد؟ این مسئله حکایت از آینده نگری و حسن رهبری رسول خدا دارد. اگر در اول کار رسول خدا امیرالمؤمنین را معمور ابلاغ می‌فرمود، آیندگان نمی توانستند برطری علی را بر ابوبکر بیابند. اگر مردم عهد پیامبر به این نکات دقت داشتند، هیچگاه با وجود علی تن به بیعت با ابوبکر نمیدادند. در تاریخ می‌خوانیم که پس از عظیمت ابوبکر جبرئیل نازل شد و پیام پروردگار را آورد که ابلاغ رسالت از ناحیه تو شایسته هیچ فردی نیست جز خودت. یا مردی که از خودت باشد پس رسول خدا علی علیه سلام را فرستاد و او ابوبک را از نیمه راه برگرداند و ما اینکه گفتید علی جوان و کم تجربه بود و توانایی خلافت را نداشت و هنگامی که پس از بیست و پنج سال به خلافت رسید نتوانست کشور اسلام را به خوبی اداره کند و در نتیجه خون ها و انقلاب های زیادی را موجب شد خود یک توهین دیگری به ساحت قدس الله جل جلاله است. می ببینیم که آیا علی سیاستمدار بود یا نه. اگر منظور از سیاست معنای متداول آن که استفاده از تمامی اهرم‌ها، ام از دروغ، خیانت، حیله، قتل و سرکوب برای حفظ قدرت است، آری. نه تنها علی، بلکه پیامبر هم این سیاست را نداشت. و مبرا و بیزار از اینگونه سیاست سیاستمدارها بود و به دلیل ترس از خدا چنین سیاستی را نمیخواست و الا اگر میخواست یقینا میتوانست از همه سیاستمدارها بالاتر و برتر عمل کند اما اگر منظور از سیاست فن کشورداری بر اساس عدالت و رضایت پروردگار باشد مصلیما تیامبر و علی سیاست مدار ترین افراد بشر از آدم تا پایان عالم هستند با همین سیاست تیامبر اکرم ظرف مدت کوتاهی قبایل وحشی و دور از تمدن را تحت مدیریت و نظام واحد درآورد و جامعه مقتدر را پایه‌ریزی کرد و اما جنجال‌هایی که در دوران حکومت امیر رخ داد ناشی از عدم سیاست آن حضرت نبود بلکه ناشی از انحرافات و کجیهایی بود که در مدت بیست سال توسط خلافات در جامعه پدید آمد. سران حکومت مردم را بر اساس کینه و ادابت با علی تربیت شدند. نخستین روزی که امیرالمؤمنین به خلافت برگزیده شد و بر فراز منبر بود یکی از بزرگزادگان آن زمان از در مسجد وارد شد و آن حضرت را روی منبر دید. با صدای بلند گفت کور شود چشمی که به جای خلیفه عمر علی را بر منبر ببیند سیاست خلفای سگانه خصوصا عمر و عثمان اختلاف طبقاتی شدیدی را در جامعه به وجود آورده بود و گروهی را به عنوان اشراف پدیدار کرده بود که امتیازات زیادی را از حکومت دریافت می‌کردند پس از به حکومت رسیدن امیر مؤمنان همین طبقه سد راه حکومت شدند و فتنه‌ها درست کردند اگر به تاریخ مراجعه کنید می‌بینید که اولین فتنه و آشوب توسط آیشه صورت گرفت این زن سوار بر شتور شد و برخلاف دستور خدا و رسول او مسبب خونریزی‌های زیادی شد جنگ های بعدی هم از ناحیه سران منافقین و معاندین آن حضرت تحمیل شد. از رسول اکرم نقل شده که آن حضرت به ام سلمه فرموده ای ام سلمه این علی امیر مؤمنان و سید مسلمانان و مخزن علوم من و وسیع من و باب علم من و در دنیا و آخرت برادر من است و در مقام اعلا همراه با من است و اوست که با ناکسین و قاستین و مارقین جنگ می کنه. منظور از ناکسین تله و زبیر و آیشه، منظور از قاسطین معاویه و اتباع او و منظور از مارقین خوارج نهربان هستند. از ابوسعید نقل نقد شده با اددهی از صحابه منتظر رسول خدا بودیم. آن حضرت در حالی که بند نعلین ایشان پاره شده بود به سوی ما آمد. نعلین را به علی سپرد امیر مؤمنان مشغول دوختن نعلین شد. پیامبر رو به ما کرده و فرمود، به همان صورت که من با کفار و مشرکین بر اساس ظاهر قرآن جنگ کردم یکی از شما بر اساس تعویل قرآن جنگ خواهد کرد ابو بکر گفت آیا آن شخص من هستم؟ فرمود خیر عمر گفت آیا آن فرد من خواهم بود؟ فرمود خیر ولیکن آن شخص دوزنده نعلین من است با توجه به این حدیث جنگ های امیر مورد تصویب خدا و پیامبر بوده مرام و سیاست علی علیه السلام همان مرام و سیاست رسول الله بوده چرا چنین نباشد حالانکه که امیر باب مدینه علم نبوی و عالم به قیب و شهود بوده معنی این جمله که علی عالم به قیب و شهود بوده را نفهمیدم بیشتر توضیح می دهید. علم به غیب یعنی احاطه به درون امور و آگاهی بر اسرار پوشیده عالم و امور غیبی از شما انتظار نداشتم که عقاید باطل عوام شیعه را بیان کنید علم به غیب از مختصات ذات باری تعالی است و اهلی با او شریک نیست عقیده ما مطابق نص سریح قرآن مجید است. اتفاقاً عکس عقیده شما نص سریح قرآن است و با دلایل قرآنی می توان اثبات کرد که علم غیب مختص خداوند متعال است. ممنون می اگر اگر تعدادی از این آیات و دلایل را بفرمایید. آیات زیادی در قرآن داریم که من تنها به چند مونه از این مجموعه اشاره می کنم. در آیه پنجاو و نه سوره انعام میفرماید ده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و در آیه سی و یک سوره هود میفرماید ولا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیبه و در آیه 65 و پنج سوره نمل میفرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله و در آیه 179 سوره آل عمران آمده و ما کان الله لیطلعکم علی الغیبه با توجه به این آیات حتی از شخص رسول خدا هم نفی علم غیب شد تا چرا صد به علی اگر ما بخواهیم معانی آیات قرآن را به خوبی بفهمیم، ناچاران لازم است همه آیات قرآن را کنار هم بگذاریم و یا اقل اگر به اول آیه استشهاد می کنیم، آخر همان آیه را هم ببینیم. منظورت هم چیست؟ در ادامه همین آیه که از سوره آل امران قرارت گردیده آمده، ولکن الله دبین من رسول هیمیشا. و نیز چند آیه بعد از آیه‌ای که از سوره هود قرارت کردید می‌فرماید: تلک من ان با القیب ها الی که ما کنت تعلم ها انت ولا لا من قبل و در آیه چهلونو از سوره عالم ران از قول حضرت عیسی آمده و اونبه به ما تأکلون و ما تدخرون بر طبق این آیه حضرت عیسی ادعای علم قیب کرده و در این ادعایش صادق هم بوده. نتیجه ای که از این جمع گرفته می شود این است که علم قیب ذاتن مخصوص پروردگار است. ولی خداوند متعال بر طبق حکمت و مشیت خود از این علم به برخی از برگزیدگان خود افاظه می کند. پس علم قیب خدا ذاتی و علم قیب انبیا و خلفا فااز است آیا علی پیغمبر بوده که به او هم از این علم فاازه شده؟ اگر آقایان محترم قدری توسعه به فکر خود میدادند مطلب به خودی خود آشکار میشد اگر فکر ما کوتاه هست شما که به حملله فکرتان باز است بفرمایید چگونه برای علی اثبات علم غب می آیا جز این است که اگر باید خلافای پیامبر علم قیب داشته باشند پس لزوما خلافای راشدین هم باید علم قیب داشته باشند در حالی که هیچ کدام از آنها چنین ادعایی ادعای نداشتند مسلب صحیح را گوشتت کردید ما هم عقیده داریم که همه خلافا بایستی مثل امیر علی علیه السلام عالم به علم قیب باشند و البته همینطور هم هست چرا که در غیر این صورت نمی توانند به مانند او سکان هدایت امت را در دست گیرند و در نتیجه تدریجا تمامی زحمات رسول خدا را به باد فنا خواهند داد. اما مشکل این است که شما در تشخیص خلفا اشتباه کردید بس دوچار این تناقض شدید. از نظر شیعه خلافای رسول خدا کسانی هستند که مظهر تام و تمام آن حضرت باشند و همه ایشان دانای به عمق امور بودند و آنها دوازده نفر بودند که در اخبار شما هم به تعداد و نامهای ایشان تسری شده است و اتفاقا یک دلیل عقلی و قاطع بر بطلان رأی اهل سنت همین نکته است که خلفای ایشان حتی از حل مسائل جزئی علمی هم آجز بودند. عقل سلیم و نسل شریف این را نمیپذیرد که جانشین یک رجل علمی فردی جاهل و بی سواد باشد. قریب به دویست نفر از علمای شما این حدیث را نقل کرده اند که انا مدین العلم و علیون بابا ها. و من اراد علم فلیات الباب یعنی من شهر علم هستم و علی دروازه آن است و اگر کسی علم میخواهد به دروازه علم یعنی علی مراجعه کند این حدیث چه ربطی به بحث ما دارد؟ سخن در این است که به چه دلیل میگویید علی عالم به علم قیب بوده؟ به این دلیل که پیامبر میفرمایند هر علمی که من دارم علی هم دارد. پس چون پیامبر دارای علم غیب است، پس علی هم عالم به علم غیب است. حال چه کسی گفتی که پیامبر علم غیب داشته؟ آیا پیامبر اکرم مرتضا و برگزیده خلق بوده یا خیر؟ این چه سوالی است؟ واضح است که پیامبر خاتم الانبیا و مرتضا بوده. خب ما هم به دلیل آیه عالم الغیب فلا هر و علا غیبه احدن الا لمن ارتا من رسول میگوییم که پیامبر دارای علم غیب است ترمزی از عبدالله ابن عباس نقل می‌کند علم ده جزء است که نه جزء آن مختص علی است و تنها یک جزء آن برای همه مردم است و علی به آن یک جزء هم از همگان داناتر است ما چونی نمیگوییم که امام علی علیه السلام و ائمه اطهار مانند پیامبر از طریق وحی با پروردگار ارتباط دارند اما به طور یقین میدانیم که تمام علوم مهم عالم از گذشته و آینده از جانب حق تعالی به پیامبر ابلاغ میشد و آن حضرت بعضی را در همان ایام به امام علی میفرمود و آنچه باقی مانده بود در دم آخر به امیرالمومنین افاظه کرد امام علی در بالای منبر ضمن خطبه ای اشاره به این معنا کرده در این خطبه آمده سؤال کنید از من قبل از اینکه مرا نیابید همانا در سینه من علم فراوان است. آنگاه اشارهای به سینه مبارک کرده به فرموده این سینه من مالا مال از علم است. احدی جز امیرالمؤمنین ندای سلونی را سر نداده. امام احمد ابن و ابن حجر متعصب گفتند سلونی را احدی از صحابه نگفته مگر علی ابن سلیمان بلخی حنفی از ابن عباس نقل می کند که علی در بالای منبر فرمود سوال کنید از من قبل از آنکه مرا نیابید. هیچ آی در قرآن وجود ندارد مگر اینکه من میدانم که در کجا و چگونه نازل شده. از ها سوال کنید. هیچ فتنه ای نیست مگر اینکه من میدانم در آن فتنه چه کسی کشته می شود. ابن حجر اسقلانی و جلال الدین سیوطی از امام علی نقل کردند سؤال کنید از من و این را بدانید که اگر هر چیزی که تا روز قیامت رخ میدهد را از من بپرسید من به شما خبر می‌دهم آیا این بیانات ادعای علم غیب نیست آیا جز عالم به علم غیب کسی میتواند چنین ادعایی کند و مفتزح نشود اگر امیرالمؤمنین دارای علم لدنی نبوده و اتصال به ماورای عالم نداشته پس چگونه از امور غیب خبر میداده به گونه ای که بعد از سالها این اخبار تحقق یابد اخباری از قبیل اخبار قتل میسن تمار به دست عبیদুল্লাহ ابن زیاد لعین و حادثه قتل امر ابن همق به دست معاویه ملعون و اخبار شهادت فرزند دلوند خودش حضرت امام حسین علیه السلام به دست یزید پلید و شهادت خودش به دست ابن ملجم اللعین همه و همه اخبار غیبی است. در خبر آمده که امیرالمومنین فرمود این ستارگان که در آسمان وجود دارند شهرهایی هستند مثل شهرهای زمین. شما را به خدا آیا در یک دوره و زمانی که دوربینهای امروزی وجود نداشت، خبر از آسمان و ستارگان دادن برخلاف حیعت مورد قبول آن زمان با چه علمی سازگار بود؟ از جمله روزهایی که پرده از علم آن حضرت برداشته شد و امت فهمیدن که آن حضرت عالم به علم غیب است، مثل فردا که روز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین بود در آن روز مردم به محضر رسول خدا مشرف میشدند و به آن حضرت تبریک و تهنیت میگفتند. شخصی از میان جمعیت ارس کرد ما برای تهنیت خدمت رسیدیم ولی علی ما را از ورود بر شما منع کرد به عذر اینکه 120 هزار ملک جهت تبریک نازل شدند و در حضور شما هستند ما تعجب کردیم که علی از کجا تعداد این ملائک را می دارد. آیا شما به او خبر داده بودید؟ رسول خدا تبسمی کرده و به علی علیه سلام فرمود علی جان تو از کجا دانستی؟ عرض کرد ملائکهی که بر شما وارد می شدند و سلام می کردند, هر یک با زبان خاصی با شما حرف می زدند. من شمارش کردم و تعداد آنها را یافتم. رسول اکرام فرمود ای حسن خداوند علم و حلم تو را زیاد کند آنگاه رو به مردم کرد و فرمود من شهر علمم و علی آن است. هیچ آیتی برای خدا بزرگتر از علی نیست او امام خلق و بهترین مردم و امین خدا و خزاندار علم خداست و اوست همان اهل ذکری که در آیه فس اهل اهل ذکر کنتم لا تعلمون اگر شما جویای علم هستید، بدانید من خزانه علم هستم و علی کلید این خزانه است. هر که ورود به خزانه را می باید کلید آن را بیابد. شما را به خدا قسم آیا می توانید در میان اصحاب پیامبر فرد دیگری را با این خصوصیات بیابید؟ خدایا تو را شاهد و گواه می گیرم که ادای حق کردم و وظیفه دینیم را بدون حب و بغض انجام دادم و از حریم پیام برد دفاع کردم و حقیقت را ظاهد کردم و از تو کمک می گیرم و بس. جناب آقا، من به اتفاق چند نفر از محترمان که در جلسه حضور دارند تمام این چند شب را با عشق تمام در مجلس حاضر می شودیم. روزها درباره فرمایشات شما بحث می کردیم و مطالب را حلاجی می کردیم. خدا بزرگ را سپاس گذاریم که ما را به راه حق راهنمایی نمایی فرمود صد درصد برای ما ثابت شد که شیعه امامیه برحق است علاوه بر ما بسیاری از مردم ساده و پاکتل که در پی حقیقت هستند مذاکرات این مجلس را از طریق روزنامه پیگیری می و در نتیجه در نزد ما به صورت محرمانه اظهار تشیع کردند ما از شما متشکریم که با روی باز و اخلاق خوب جواب سوالات ما را دادید فقط مختصد اشکالی در گوشه دل ماست و آن این است که آیا در قرآن کریم ای هست که ما را دلالت به امامت اهمه اصناعشر کند یا خیر؟ و اینکه آیا در کتابهای ما هم اسامی دوازده امام ثبت شده یا خیر؟ خدا را سپاس میگویم که هدایت را شامل حال بندگان خوب خودش گرد و اما در جواب این سوالات شما در ابتدا باید ارز کنم که بنای قرآن مجید بر اجمال و اختصار و ایجاز است و به همین دلیل هم اجاز است و تا پایان روزگار بدی و تازه است. تمامی حقایق عالم در این کتاب آسمانی پنهان است. اگر بنای آن بر تفصیل و بیان جزئیات بود، دیگر نمی توانست محتوی تمامی حقایق عالم باشد. قرآن مجید کلیات را بیان میکند و بیان این کلیات و مشخص کردن جزئیات را بر آخه رسول خدا می گذارد. برخی افراد غیردقیق می گویند چون اسم های در قرآن وجود ندارد، پس ما آنها را قبول نداریم. به میگوییم اگر چنین است پس خلافای راشدین را هم نباید قبول کنید. همچنین جزئیات احکام دین مثل تعداد رکعات نماز و طریقه ادای رکوع و سجود و تشخد نماز را هم نباید قبول کنید. همونطور که گفتم قرآن کلیات را بیان می کند و اطاعت علال را بر مؤمنین واجب می کند. اما اینکه که چه کسانی هستند را مبین قرآن یعنی رسول خدا بیان می کند. شیخ سلیمان بلخی حنفی از ابن عباس نقل میکند که مردی یهودی به نام نعسل خدمت رسول خدا مشرف شد. سوالاتی را در توحید مطرح کرد و جواب شنید و اسلام آورد. سپس ارس کرد ای رسول خدا هر پیغمبری دارای وسیح است. وسیع شما کیست؟ حضرت فرمود، وسیع من علی ابن عبی طالب است و بعد از او دو دخترزاده من حسن حسین و بعد از ایشان نه نفر از سل حسین. ارز کرد، تمنا دارم اسامی ایشان را برای من بیان کنید. فرمود، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسا، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و حجت ابن الحسن. پس از ذکر اسامی امامان توضیحاتی در خصوص طریقه شهادت هر یک از ائمه بیان فرمود. نه به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و ولایت امامان دوازدهگانه شهادت داد. پیامبر فرمود تو با لمن احب بهم و اتبعهم هم و ویدون لمن ابغضهم هم و خالف هم انگاه نه اصل را خواند. جناب سلطان الوائزین ما از دیدار شما در این چند شب بهره ها بردیم که تا آخر عمر لذت آن را فراموش نخواهیم کرد خداوند به شما خیل دهد که ما را با حقایق بسیاری آشنا کردید این را بدانید که قطعاً من آن آدم شب اول نیستم و امیدوارم به طریقه اهل بیت رسالت از این عالم بروم و در پیشگاه رسول خدا رو باشم. بنده هم از هم صحبتی و آقایان مخصوصا شخص جنابالی لذت بردم و در این چند شب که در خدمتتان بودم با شما اونس گرفتم اگر خدایی ناکرده از ناحیه من کوتاهی در حق شما شده، ببخشید و عفت بفرمایید بدین ترتیب جلسات مناظری بین عالم شیعه سید محمد سلطان الواعظین و علمای اهل سنت در شهر پیشابر پس از ده شب به پایان رسید که در پایان شش نفر از رجال و خوانین اهل سنت مذهب شیعه را اختیار کردند و مشروع این مناظرات نخستین بار در سال 1375 هجری قمری، زیر نظر حضرت آیت الله بروجردی به زیبر تبع آراسته گردید و تا کنون چهل بار تجدید چاپ شده است. مرحوم سلطان در ده سال پایانی عمر با برکت خود به علت کسالت قلبی زمینگیر گیر گردید و در ماه شعبان 1391 هجری قمری به جوار قرب الهی شتافت. پیکره پاک ایشان بعد از تشییع شکوه مندی که از طرف آیت الله العزمه مرعشی صورت گرفت، در مقبره ابو حسین به خاک سپرده شد.